سپارتن, خانه ای از امید قول میدم خیلی وسواس به خرج نده ممنون که پیش حال کردی حالا که پیتر میره سفر بدیدن این دوستم درم دست تو ببین بعد از تولد بچه نمیتونی زیاد جایی بریم ممنون که درکم میکنی مریم نمیخوام ناراحتت کنم ولی دلم میخواست بلیندارو ببینم احساسات این پیر زنکی روبروته به این راحتی ها دار نمیشه ولی اگه بدون من اولین پسر پسرمو به دنیا بیاری نراحت میشه مطمئن باش خیلی زود برمیگردم به دنیا آوردن میشم کار خودته فکرهای خوب بکن برای بچی خوبه دا چند هفته دیگه می اتما در؟ باشه پتر واتسون خیلی آهسته و آروم برون مراقب چاله چوله های توی راه باش. یادت باشه اینو اون پسر کوچولوی توی شکمش کیسه ی سیب زمینی نیست. چاشم داره. محاضر فردیجو. بله قربان. حرکت کن. احساس خیلی بدی دارم دقیقا این چه احساسی داری؟ هیچ نمیخوام شکایت کنم دکتر ولی خیلی ضعف دارم گاهی به سختی میتونم سرمو بالا نگه دارم از که این احساسو داری؟ از آخرین زایی حدود پنج ماه پیش لطفا دهن تو باز کن لصات خیلی بیرایم شده تو آینه اینو ندیدی؟ راستش من نمیدونم باید چجوری باشه به نظرمه نمیداره یعنی فقط قدر کافی آهن تو بدنت نیست. بین مادرایی که تازه زایمان کردن شایعه. وقتی بچه تو شکمت بوده بیشتر آهن بدن تو مصرف پس چیز مهمی نیست. درسته چرا خیلی مهمه؟ چرا اینقدر اومدی پیشم؟ راستش شوهرم فکر نمیکنه من مریض باشم. میگه من فقط تملاش تو از ششتا بچه و شوهرت مراقبت می‌کنی تو بیشتر از اون کار می‌کنی. لوید مرد خوبیه دکتر آوینز باور کنین فقط به دکترها بی اعتماده از وقتی که خواهرش مرده برای آنمی شربتی هست که بخورم شربت هست ولی خوردن سبزی خیلی تأثیری بیشنه لوید از سبزی هم خوشش نمیاد گوشت و سیب زمینی رو ترجیح میده روزی دو بار هر بار دو قاشق بخورم هفته دیگه بیا پیشم دلم میخواد اومدمم به اینجا فقط بین من و شما بمونه اتفاقی بین بیمار و دکتر همیشه محرمانه باقی میمونه سلام لی سلام ب اون اسب تمام روز زین کرده اونجا بستی میخوام برای این موقع رفتن به خونه خسته بشه جود میایی سر کار دیر میری خونه گاهی نمیفهمم چه میام و چه میرم قرار مهمون برتون بیا دوست دوران درش کرده این زم هم هران ممکنه پیداش منظور من شاگرد جدیدت بود اونم باید شنبه برسه مزمین کارت نمیشم لی؟ روز خوبی داشته باشی رو برم کارتون تموم شد دو دلار حق ویزیت و 50 سنت برای دورو ببخشید شوهرم به این پول زیادی نمیده مجبورم از پس اندازم استفاده کنم یه دلارم به کافیه متشکرم. خیلی لطف داری تشکر لازم میسخنم و مکوین <تصفيق> بهش بگو با اون دارو میام حتما بشمیم خدا نگه دار خب امروز من یه سواری خوب و حروم باشه الان نمیخواد کاری کنم. او آدم آروم، آروم. آروم باش. آروم باش. نه. آروم پسر، گمونم هر روز تو مرحله یادگیری هستی. خلانی رشید. خیلی وقته که ندیدم اتون درسته پدر آره خیلی وقته که اینجا نایمدین خیلی خوشحالم که شما و ام و پیتر اومدین آه بذار من آه چیزی نیست همه با من مثل عروسک چینی رفتار میکنم اطمئن باشی نمیشگرم خیلی خوشحالم که اومدین منم همینطور واقعا متشکرم که توی مدت که نیستم مراقب آنی هستیم وزن دلم خبر کنم بری. به پولش احتیاج داریم. من خیلی زود بر میکردم. راحت شرایط پیت. جاش بیش ما هم. مال من میخواد بیش این بمونه. ولی میخواستم قبل توانایت بچشم بیا بهترین دوستم خواهد داشو ببینم. خیلی خوشحالیم که اومدیم. آه ازدواج مامان گاچه شکستگی و گزیدگی دیگه زنبور کاری که یک دانشجوی پر استریا مزاحتش به حرفای مامان گوش ندیم دیم خاله تمام شهر به کمک مامان احتیاج داره. اینجا مالوت قاشنجی و واقعیت چیز دیگه خب من اینجا رو مرتب میکنم و تو جای مهمونا رو بهشون <مس dance> بهشون بدلیم خوب شد که <مس> آنی اومد دیدنت آره. <مس> اون نزدیکترین دوسته تو نه تو از هر کسی بیشتر به نزدیکی پس چرا به اونی کسیم بیشتر به نزدیک نمیگه الان کجایی؟ همینجا به نظر میت چند ست کلومترون طرف داری؟ فقط خستم مشکلت واقعا فقط همینه؟ چی شده؟ من باردار نیستم خودتو بی خودی ناراحت نکن ما خیلی تلاش کردیم هنوز لیلی خیلی کار داره که برش نکردیم میدونم ولی وقتی یعنی فهمیده بارداره بیشتر دلم خواست بچه خودمونو داشته باشیم حالا که اومده پیش ما نه ما هم صاحب بچه با مذه خودمون میشیم خدا همه چی رو به موقع هم میده شاید بهتر بذاریم اون تصمیم بگیره که دیگه بهتر برم پیتر لطفاً آهسته باش باشه ترازو گت نما مبزرای حساسی هست مبازه به خودت باش. تو هم همینطور پدا <تصفح> حافظ خانمه مبازه به آنی بچه من باشین حتما را بیافتیم دونا رو بیار پایین الان میارم مراقب باش ما خیلی خوش اومدید چقدر اینجا چالبه سفر چطور بود خیلی خوب بود تو باید جشوه کویت باشه بله آخو لیا به ساکستون خوش اومدید سفر چطور بود باورم نمیشد اینجای قدر دور باشه تو راه فقط دشت دیدن اولین بار یکی از شهرت میبیرون بله آخو اینجا شهر کوچیک و قشنگیه امیدوارم ازش خوشت بیاد امیدوارم اخوه میخوای کامپیوتر کنم چیز رزیادی توش نداره خیلی خواه بریم مغازه رو نشون بده خیلی خوبه اینجا هر کاری میکنیم از نل اسب و خطناهن گرفته تا کارای معمولی سخته وقتی به قدر کافی پیشرف کردی و تونستی به تنهای کار کنی اینا میشن ابزار تو کار سختیه بری وقتی تو کارت یکی دون از دون بیاری، بعد به افتخار میکنیم <تص> حق با شماست نظرت چیه آماده ی شروع کنیم بله بسیار خوب پیاده روی چطور بود من این که همیشه یکیسه ده کیلو یا آرت هم بمه. روزی کم کاریه. هازم درام الانی که یه نفر بیارن که میخه زنگ زده رفته تو پاش یا از لردمون افتاده <تصفيق> ماه پیش که سلینا میگزاشتم ادین زیادی رو دیدم که دو چهار مارگزیدگی شده بودن. هر روز چند نفر می‌رفتن درمانگاه پیش دکتر چند ماهی میشه که آرزوی مهمی مثل مارگزیدگی نداشتم <تصفيق> باید خوشحال باشی که مردم این شهر سلامتن ما به عنوان پزشک موظفی مراقبه کوچکترین بیماری و درد مردم باشیم و بیمارانمون به محبت و کمک ما احتیاج دارن. اینو تو کتاب بیزشکی میبشتی بلینده مطمئنی نمیخوای در مورد چیزی با هم حرف بزنی هرچی بخوای میتونی بهم بگی چی شد؟ یه هو درد شدید گرفت و نفسم بند اومد آلت بیهسی به هم نست بذار به تو اتاق ما نه لازم نیست بچه تکون میخوره؟ فکر نمی کنم چیز خیلی مهمی نیست مزور کارمو تموم کنم بعدش میبرم خونه. مابان میگه پیاده روی برای سلامتی آدم خوبه همیشه پیاده روی میکنین؟ اینا اواخر با عصب میرم به خاطر من پیاده میرم؟ نه نه یه اسب دارم که میخوام بدمش به لیلیان ولی هنوز سرکش و چموشه دارم سعی میکنم برای سواری آمودهش کنم فکر کردم باید نشم رو به اونم خودم استراحت بدم. من اشی در مورد زین کردن اصلاً نمی‌دونم. فقط افساره میشنسم کار با دلیجانو بلدنم. بعد یاد بکری <تصفيق> فکر می‌کنم بعد از اتفاق امروز بهتر بشینی. امروز چی اتفاقی افتاد؟ اصلاً چه زنگا کردن نیبود. دکترها وسواس خودشونه دارن. وقتی برگردی خونه بچه کی به دنیا میاره؟ مادر شوهرام اون یه قابل است. کاش می‌شد خودم تو به دنیا میآوردم. این کار یه دکتره. حتم دارم اتفاقی نمی افته خانمم جش شگرد جدیده نمه اومده با ما شما خانم... همسرم دکتر روونس شما یه دکترین؟ بله همینطور بهترین دوستم هم آنی بادسانم پیزشکه از آشنایت خوشحالم جاشو خانم جالبه نمی دونستم به زنها منچاسه دکتر بشن اجازه می دهن؟ منصورم این بود که باید که اجازه بده؟ زیاد سخت نگیر لیلی اون تازه رسید اینجا حتب دارم به زودی متوجه پیشرفت خانما می شه به خیافش نمی این دخترمون لیلیانه بهش یاد دادیم حرفشو بزنه اشادت میکنیم خیلی خب بریم در سورمونو بشوریم بویه غزاتون که خیلی خوبه لیلیان واقعا این خودته میدونم دوشی زوونز آقای خاصم خواستم بهتون بگم من قصد بیعترامی نداشتم من هم دوست داشتم نظرم رو بگم ولی نمیدونم درسته یا نه خیلی جانبه که نظرتون رو بشنوم به نظرم باید ترس فکرتون رو تغییر بدین. امروز زنان هم فعالیت های بزرگ اجتماعی دارن ما الان و پزشک و نماینده زن داریم حتی شهردار که شهرهای اطراف زنی من مشکلی با دکتر بودن مادر و خت رو نبرم پسسب می خورم. فقط فقط قبلا یه زن دکتر ندیده بودم معذرت میخوام مثلین که رفتارم خیلی مناسب نبوده باشه قبول میکنم. شما باید درستاتون را بخونه این درس نیست یه تفریق مطالعه میکنه. اگه مامان بابا بذارن تمام روزو کتاب میخونم خیلی خوبه شما رو با کتاباتون تنها میذارم روشی زافه شب خوش آقای کاهیل آدمه خوبی به نظر میاد توجهی نکردم شب خوش بر اخلاق شب بخیر پدر تو. حالت چطوره؟ خیلی خوبم همه جی رو به راه نمیتونم باردار بشم بلیندا تو سالم و جوانی ممکنه یکم زمان ببره به نصرم نامید شده همش تو فکره با هم دربارش حرف زدیم آره میگه از زندگیمون خیلی راضیه ولی اخیران خیلی سر کار میمونه دیر میاد حتما کارش زیاد شده حتی یه شاگرد دست کرده شاید حق با تو باشه خوشحالم که اومدی و میتونی با هم دیگه حرف بزنیم. منم همینطور. آنی چی شده؟ دوباره دردش شروع شد. این بار شدی تره. سارا میسوزه سابوکی میکنه. لینچا بنه سارام یه مشکلیه. ساایمان سوودسه ولی واقعا نمیدونم چرا؟ به نظرم تش و جا حاملی خااملی؟ به کرد. نظر جدی میاد چی هست؟ یکی از مشکلات زنای باردارره هنوز کاملا مشخص نشده چرا فکر میکننی بهش مبت است خب علائ مثل درد عزولانی گررانی شدید بیهوشی عملات اصل عملات هم داره؟ نه ولی ائمهگه رو داره خب فردا اول صبح به پیتر تلگراف میزنم بهش اطلاع میدم متشکرم بهش بگو بهتر آنی تا زایمانش اینجا بمونه استراحت کردن براش ضروری سای میکنم یه نسخم برای مادر پیتر بفرستم گفتی تو اسپارتن زندگی میکنم مچگرم واقعا فکر میکنی این کار لازم از اونجایی که استراحت مطلق لازم داری خانم باتسون یه اتاق تاریک خیلی بهت کمک میکنه میکی تنبلی کنم نمیتونم همه ی روزا یه جا بخوابم من یه دکترم یادت نیست؟ ولی من دکترتم و اینجا خونه من اگه مشکل تشن و جا حاملگی باشه اصراعت مطلع رو هرشون فکر زیاد بزرگش می شون اما اگه این کارم بکنم بعدا متاسف نمی شن. من دوستت دارم منم دوستت دارم یه <تص burdame> گلابی برای دختر عزیزم مطمئنی نمیخوای پیش خاله آنی بمونم؟ نه تو <تص> به مد اینو میشه میزارو رو در مغازه کسی به احتیاج داشت خودشون میان دنباله صبح بخیر ما صوت خیر خدا به روز خوبی داشته باشی عزیزم خدافظ خدافظ <تصفح> <تصفح> این دختر هر جا که بره شلوغ میکنه <تصفح> بیا بگیر ما اینجوری می بگی شام نمیام خونه اون یکی مالی جاشو است اون کارمند جوان تازه کار میتونه خیلی قزو بخوره هیچ میدونی همیشه چقدر ممنون تو هم؟ بد نیست اگه به هم بگی مچکرم منم از تو همیشه متشکرم. لیا بینز او یادت نره تلیگرامو بفرستی باشه باشه روز خوبی داشته باشه آقای پرمشقلی بلینده ها فکر میکنند سلامت آنی با فرزندشتر خطر است لذا قرار بر این شده است که او تا هنگام وز حمل اینجا بماند پیغام مشابهی را برای پیتر مخابر شردم لی آونس آقای مکوی متاسفانه امروز کار ممی کنم ولی اگه وقت می خواهیم باید... شما این شربت رو به میبل دادین؟ ولی شربت آن آهم برای آنمیه چرا بیخودی بهش میگین که مریضه؟ مشکل اون اینه که یه کمی تنبله. میبل مریض آقای مکوین. اون باید این دارو رو بخوره. به شربت فوق‌العاده شما احتیاجی ندارم. یه دکتر خواهرم با شربت گوشم. من جزئیات مرگ خواهر شما رو نمیدونم. حتما چیز طبیعی نبوده. ولی همسر شما چند ماهی پیش بچه به دنیا آورده که شرایط بعدی رو براش ایجاد کرده. شاید اگه اینقدر یک دنده نبودی متوجه می‌شدید. از نظر من ره... بیخیال نظر شما ندارم و این شربت به درد نخورم نمی‌خوام. من به هیچ دکتر ندارم. حالت خوبه بلینده؟ هاره فقط از کاری یادم یه دنده خیلی تحجب کردم لاید مکوین واقعا روش زندگی خودش داره باشه. اون شرایط زنش رو درک نمیکنه. گاهی همه ما درگیر زندگی روزمره میشیم و قدرت درک شرایط دیگران رو از دست میگیریم. بازم دارم پر حرفی می نداره به نظرم لازمه که بشنوام بیشتر از این خودتو ناراحت نکن روز خوش روز خوش. خوبه زربات یک نباخت آره دخترتون خیلی با حوش آقای اوونز. حتما همه خونوادتون اینجوری کاش کشمی هوش حوش لیلیانا به من نسبت داد ولی ما اونو فرزندی خبول کردیم نمیتونم از با هوشش به خودم جدی آره حتا فکرشم نمی دخترتون و خانوم یعنی دکتر و خیلی با هم جدی میگی؟ منه همینطوره اونم به نصرم خیلی باید صداده رویم میانونم باور کن که گوشنم نیست دستور دکتره حتی اگه دلت نمیخواد باید تمام کاسر رو بخوری من بچه نیستم بلیندا من یه دکترم میدونم چی برام خوبه دونستن و انجام دادن دو تا چیز کاملا متفاوتن بازم درد گرفت نه بچه حرکت میکنه باید بگم حالم بهتر از دیروز شده از دردای دیروز تا حالا حرکت پسرمو احساس نمیکرد تو الان گفتی پسره از کجا میدونی که پسره میدونم خیلی عاقلانه نیست ولی از نظر مرید چون خیلی چاق نشدم پسره منطقیه باورای قابله پیره از نظر پزشکی قابل توجی نیست هرچی میخواای بگو ولی وقتی خواهر پیتر باردار بوده مری نگرانش بوده چون اونم خیلی دردو عجیب داشته و اون فکر میکرده بچه با پا مدی ولد میشه و همین دا یه شود. بار حدش درست و حساب در اومده حالا هرچهی میگه باور میکن متاسفم مثل اینکه بازم هم کردم شاید نباید دربارش حرف می زدم زیادی رو می که نخواست باردار میشن. معوللی میخوایم بچه داشته باشیم. هر دومون میدونیم یک کم زمان میخواد چرا به خودت وقت نمیدی ها... من مراقب به یه به اسم میبل مک کوینم تو ه سال گذشتهی بدونه که بخواد صاحب 6 تا بچه شده برات خیلی مهمه نه م... میرم شما حاضر کنم لیلی حالا لی الان میره هر وقت بخوای میتونی با هم حرف بزن لطفاً سو به بخورانی. داشتم دورات می‌گشتم. نه یارانه انی شدم. از شما داد بیرم. اصرار داره که خالیش خوبه. <تصفيق> <تصفيق> به نظرم قبلن اینو شنیدم شما دوتا خیلی شبیه همین این ترس ناشت. برای همین دوستای خوبی هستیم امشب جاشوارو برای شام نهی بردی خونه لیلی باید درسشو ادامه بده دلم نمیخواد رفت آمدش باعث بشه که بخوان ازدواج کنم برای چی اون هم آدم خوبی هم از لیل بزرگ. دکتر داره. اون یه شاگرده حنگار، من برای لیلیان انتظار آدم تحصیل کرده. من همسر ی آهنگرم و هیچ شکایتی از شغل همسرم ندارم. تو همین سال‌های گذشته دوایم به این فکر می‌کردم که چطور رازیک با هم ازدواج کنیم. می‌تونستم انتخاب بهتری داشته باشم. تو بهترین انتخاب من بودی. <تصفيق> من با ریزه کردم چون واقعا به علاقه داشتم. ولی او بنزگ لیلیان و جاشوا به هم دیگه علاقه‌مندم و نمیتونیم سد راه اونا بشیم. علاوه اگه لیلیانو به صور بخویم اسکری باز داریم، مثل اینکه سرعت انجام اون کارو بیشتر کنه. <متعت> من منظورتون می فهم. نمیخوام مانع خوشبختیش بشم یه شهر کوچک به دشتر مثل تو افتخار میکنه حالا اگر لیلی هم بخواد بره دانشگاه هر کاری بتونم انجام میدم نمیخوام تو این خونه زندانیش کنم اما داره سرد میشه نمیخوی بیای تو نه تو برو چند دقیقه دیگه میان بیشم ها ها ها کو جوونای جانم درس لطفا بسور برم بهتره برگردی خونه داری یاد بگیری به خودم مرجوچه دلم نمیخواد مدرسه ام دیر بشی میبینم تو مدرسه زبان درسی یادتون ندادم ببخشید میشه بسری اون خانم جوان باشه به تو ربطی نداره پسرای فزولو چرا ازاره؟ حق نکنن من الان پودرت میکنم. یه لاسه صاحب کن. قانون من میگه اگه تو به رسابتو برسم کافیه. یه بار دیگه مونده. بعد از ولی توپم من میرم برای خودم تو هم برای خودت. هم بار توفاق داری ما چاون میشت شاید هم شاید دکتر خوبی داره خواهش بیکنم ما چاون از کنم خواهش بیکنم مستم وقتی هیچ وقت نزدی که دوشیز آفنس نه نه نه هیچ وقت خوبه گام شد صبح خیلی دوشیز آفنس داشتی چی میرفتی مدرسه؟ همینطوره بس تا دی نشده بفرمید هده اکثر کردم جین ولی یکم به هاشمو دارم باش بدراتون به این آدم, آدم سخت گوشه <تصوح> اون با کار نفس میکشه و زندگی میکنه مامان میگه گاهی بابا تو خوابم خواب, خواب کارو رو میبینه و میخواد دوم لنبور بگرده <تصوح> فکر کنم آینده منم همینجوری میشه <تصوح> زندگی خیلی بدی هم نیست نتون چطور؟ بخوای مثلا مادرتون دکتر بشی؟ نمیدونم. هنوز تصمیم نگرفتم. شاید به وکالت بخونم یا یه نویسنده مشهور زن در دنیا بشم. ولی از یه چیز مطمئنم حتما میرم دانشگاه. خب بهتره برم سر کار. موفق باشی. جاشوا. تمامیتون دلیا. شادی و باید همینجا باشه بفرمنی خان متشکرم ممنونم که منو رسوندی امیدوارم روز خوبی داشته باشی آه و تو هم باید دکتر تازه کار و ویلز باشی تازه کار مری واتس. اینو قبلا میدونستیم خب عروس عزیزم کجاست؟ میشه زحمت بکشی وسائلم رو برام بیاری؟ اینجا چیکار کار میکنی؟ امتظار داشتی کجا باشم دختر دوست داشتری من؟ تلگراف شوهر بلیندو به دستت نرسیده چرا؟ برای همینم اومدم میتونی تا موقع وضع حملت پیش دوستت بمونی؟ دلم نمیخواست تولد اولین پسر پسرمو از دست بدم دلم برات خیلی تنگ شده اینجا از توی قارم تاریشتری آره همینطور لطفاً اینکارو نکنی چی؟ آنه یکه نیست نور لازم بیاری خیلی خب عزیزم چیکار کار میکنی؟ دارم بلندش میکنم اگه زیادی توی تخت بخوابه کمرش درد میکره و همین باعث زایمان خیلی سخت میشه از نظر من بهتر تو زمان زایمان تو همین تخت استراحت خانم ما من کیسه آرد نیستم وسط بدترین طوفان برف عمرم بودم همچین طوفانی رو حتی تصورم نمیتونین بکنین وقتی اون شب سه تا بچه به دنیا آمد تعجب کردم من انتظار دو قلو داشتم نه سه قلو تو <تصحیح> توفان سایمان خانم ها همیشه استراریه این جریمه به خاطر اینه که ما زنا صبر و تحمل بیشتره این که جریمه نیست خانمه باید عجب زندگی ما حالیه چی داریم خب دیگه باید ببرم تو اتاقه توانیه اگر از حالا بذاری اون پسر کوچولو زندگی تو سخت کنه یهو ها بینی تو سی سالگیشم باید بند کفششو ببندی شما فکر میکنیم بچه پسره؟ فکر نمی کنم این حقیقته شب بخیر هیچ راهی وجود نداری که بشه بهتر همی بریم بخوابیم فردا خیلی فرده با ایجازتون من بدرقش میکنم به نظرم جاش داماده خیلی خوبی میشه. بگو ببینم برنامه. داستان امشب چیکار کرد؟ وقتی کتابو گذاشتم کنار داشت خرابه های باستانی رو کش میکرد. هرچند اگه نخونم نمیتونم ادامشو حس بزنم. تا کسی رو ندیدم داستان یه کتاب انقدر جالب باشه. اگه بخوای میتونم کتابو بهت قرض بدم. نه، مطمئن نیستم از داستانش خوشم بیاد. شاید بتونی یه بخشی از اونو برام تعریف کنی. اینجوری میفهمم ارزش خوندن داره باشه تعریف میکنم. فکر میکنه این پدرت اجازه میده؟ شاید بهتر باشه فرده شب بعدشان کتابو برای همه بخونی به نظر منم پیشنهاد خوبیه لیو لیا وینسون بزرگ شده و خودش برای زندگیش تصمیدیه من که نمیخوام بشم فقط دورا دور, دور مراقب بشم شب خیل. ببینم چیکار کردی ها خوبه داری خوب پیشرفت میکنیم ممنون آقا اکثر تلاشامو میکنم که راضیتون کنم میدونم میخوای من رو رازی کنیم راستشو بخواین. میخواستم از دخترتون لیلیان خاصه خوب خوب فکراتو کردی که داری ازش خواستگاری میکنیم درسته ببینم آ دلم نمیخواد اون از اهدافش دور بشه. قربیتم و دانشگاه رفتنش نشم. میدونم چقدر دوست داره به دانشگاه. خیلی خب. دارم مردوش فکر کنم. باشه؟ باشه. فعلا قرون عالی است. الهی تا زود میاد اون بشه. باحق. با. باز کردن درمانگاه دیر نشه. دلم نمیاد آنی رو اینجا تنها بذارم. به خصوص اینکه اینقدر از تخت بیرون و استراحت نمیکنه. کاش شما دوتا وقتی من اینجام اینقدر با هم بحث نمی معذرت میخوام می خوام عزیزم باید از اینکه اینجا حفظ شدی خسته شده باشی من تمام روز پیشش هستم تو برو پیش مریضات موقع شام می اگه چیزی خواستم خبرم کنی متشکرم روز خوبی داشته باشی خدا رو شد آزاد شدیم اسیزم لباس تو بپوش میخواییم با هم بریم تو باغ گلا رو بو کنیم <تصفيق> <تصفيق> دکتر آویز میشه با حرف بزنه؟ خانم بکوین بیایی تو فقط یه دقیقه وقت دارم لویده تو فروشگاه اصلی جا گذاشتم گفتم میرم قصابی خدید کنیم چه کاری ازم ساختست میری؟ دکتر حالم خیلی بده مثل اینکه که مریضیم داره بدتر میشه تب سرم گیج میره و نمیتونم بچم بغل کنم چون آنیمیت داره بدتر میشه بدنت به آهن احتیاج داره حتی از اینم بدتر میشه. چی کار کنم که بهتر بشم؟ قبلا که بهت گفتم. یا سبزیجات یا اون شربت. اگه به دستوراتم گوش ندی کار دیگه ای ازم بر خواستم شربت رو بخورم باور کنین. حتی احساس کردم دارم بهتر میشم. بعد لوید پیداش کرد و بقیش هم که میدونه. بله میدونم شیشه شربتو زد سمی. به خاطرش خیلی متاسفم باور کنید اون فقط ناراحت بود اون منظوری نداشت. اون شوهر و پدر نظیریه شاید اما اگه خودت به خودت کمک نکنی کاری ازم ساخته نیست. بوسه خوش قلم بلندا خیلی خوشبخت به نظر نمیاد فکر می کنم شاید از من خوشش نمیاد ولی همه به من احترام میذارن احساس خوشبختی نمی کنه خیلی دلش بچه میخواد بلندا دیگه ناامید شده آه. با شده شدن سر و کلی من با این وضع و اینکه قرار شده تا تولد بچه‌م اینجا بمونم حالش شده آه آه چرا زودتر چیزی نگفتی اگه مشکلش بچه دار شدن راه حلش پیش منه نصر درجی به یه چیز شیرید چی؟ باشه متاسفم لوید اینجا چیزی نوشته من یه بیشتره، هم بیشترم اگه نگفتی تا علا بعد میرسید تو سفارشای کالا ذکر نشده کاری ازم ساخته نیست ولی میتونم یه کاری بکنم اگه یه فروشگاه دیگه اینجا بود الان تا یه هفته یه دیگه میرسه من اومدم لوید چرا انقدر طول کشید ها منظرت میخم لاید ولی یکم صف بود همیشه یه بانه داری رابیت داریم باید قبل از گروه پسارا رو تعمیر کنیم خانم خانم خانم به خاطر اینکه دیر کرده این کار رو میکنه تا بچه و یه نوزاد داره میگه زیادی خسته میشه فکر میکنی یه مادر کار نمیکنه؟ بارها این حالتو موقع بارداری و بعدش دیدم به آنمی شدید مبتلاست نیاز به محبت زیاد نداره خودم بردم چطوری با زنم رفتار کنم نه اتفاقا اصلا برد نیستی تو خودخواه و ادب و مقروری و ارزش زنی تو نمیدونی نمیدونی یه مادر که جونشو برای بچهاش میزنه یعنی چی دکتر اویس میخواد زندگی زن تو نجات بده سید باش ببرش در درمانگاه. و دکتر اوونز بخواه که بهش شربت بده با من اینجوری حرف نزن هر که دلم بخواهد حرف میزنم سود باش ببرش در منگاه فقط امیدوارم که خیلی دیر نشده باشه آدم خود خواه کم عقل دو برابر مقباره لازم بهت دادم دیگه لازم نیست امروز بخوریم نه خانم از فرده هر روز دو قاشق چای میخوره؟ می و اگه ظرف چهار روز حالت بهتر نشد بیا پیشم <تصفيق> باید اصرای کنم دفعه قدر که با همه هفت زدیم اصابانی شدم شربت چقدر بده کنم؟ فقط بذارین که میبل مرتب بخوره ما نیازی به صدقه نده پول بطری اول حساب شده بود این جای گذینه همونه را نه کنی درباره ی پیادربی شما آنی به شرط چیزی نمیدونم دونم، اما تو این شر همیچی فوری می پیچه. هیچ راضی بیشتر از پنج دقیقه دوبارم نمیره. اینجا شهر کوچیک و الان فهمیدم برای چی اینجا رو دوست داری. میشه بپرسم شما برای چی با هر دستور پزشکی که با نی مخالفت می کنی؟ خب راستش به طور عامی با دستورات پزشکی مخالفت نمی کنم. ما فقط درباره نحوی درمانش به هم اختلاف مسابقه نیسمیری اگه یه مریض با قنگاری یا سینه پهلو بیاد پیشت هیچ وقت بهت نمیگم باید چیکار بکنی چون این کار توه اما تولد بچه ها کار منه سی سال کار من بود کلی پیشرفت علمی جدید پدید اومده گاهی <مش> <مش> های <راه> قدیمی بهتره <مش> <مش> آنی ممکن شرایط خاصی داشته باشه که هم برای خودش و هم برای بچه خطرناک باشه مطمئنی که مطمئن نیستم ولی نمیخوام خطر کنم مم پس درسته که میگن دکترها علم پزشکی رو تجربه میکنن ظاهرا این گفتگو ما رو به جایی نمیرسونه آنه به هم گفته بچه دار نباشه من با این مشکل زیاد مواجه میشم اگه بخوای میتونم راه حلی بهت بدم که حد میدارم چی حرف چی حرمیزنین فکر نمی کنم مشکل زیادی داشته باشی به نظر تو مشکل من چیه؟ تو زیاد عصبی هستی مردم بیش از حد نگران کار و خانواده و اینجور چیزان و براشون مهم نیست بچه دارن یا نه چند سالی میگذاره و اتفاقی نمیافته اما یه روز تصمیم میگرن که دیگه بچه دار شدن و بذارن کنار تا قبل از اینکه خودشون خبردار میشن صاحب بچه داریم میشن داریم به یک توصیه میکنین که آروم باشن قبل از خواب یه کتاب بخون چند تا نفس امیغ بکش و قبل از اینکه خودت بفهمی میام بچه تو به دنیا میارم؟ سعی میکنم این کارو بکنم هر پسر بچه ای پتوی خودش رو میخواد موافق نیست <تصفيق> چرا موافقم؟؟ شانس رفت میره فروشگاه خرید موقع شام برمیاردم تو هیچ وقت استراحت نمی کنین همه میگن یه مردی خوب کار نکنه نباید قضا بخوره من ازم کلی کار دارم فکر میکردیم وقتی یه شاگرد استخدام کردی دیگه وقتی باشی همینجوریه بجنه 6 هفته کارم عقب بشه 2 هفته واو لیلی اون چه لباس عالی و قشنگی پوشیدی میخای کجا بریم من ازم خواستگاری کرده قراره ببینم هی جون تبریک میگم لطفاً میجوشو سلاممو برسون حتماً بجا شو گفتم بعد زود برگردین قول میدم خ حافظ حالا حافظ؟ نه امروز کار میکنی؟ تو سختتر از هر مردی که میشناسم کار میکن نمیتونم مشتری رو دست خالی برگردم بالا به موقع کار میتونم فکر کنم چیزی هست که بخوای باید دوست در میون بزنیه سری افکار تو سرم این طرف اون طرف میرن بهتره باید یه نفردیگه مطرعشون کنی حرف زدن با خودت باعث میشه جوابایی دلخوا تو میدینی نمیدونم با ازدواجش دیلی انشوار کنم تو امروز سری ازش مراقبت کنم ولی... بچه های ما بزرگ میشه و کم کم بال در میارن یه پدر باید اینه بدونه که با, با بچهش بزرگ بشه درسته صبر بلین دا بیشتر قسمه اون یه مادره خداوند بزرگ برای بزرگ کردن فرزندان بهشون صبر زیادی دا پدرا بر اندازه این مادرها سبر و طاقت کاش میشد استراحت میکردی من حالم خوبه ظاهرن درباره بوده یه مقدار اشتباه میکردی شاید حال لی بهتر شده میگه حالش خوبه ولی هنوز احساس میکنم به خاطر بچه دور نشدنم کمی ناراحتم. شاید زیادی حساسی و فکر میکنه که ناراحتی نمیتونم دارم فکر میکنم از اینکه که با هم کرده پشت شد نه لی این یه خیال باطله اون از اینکه با تو ازدواش کرده به خودش میباره شاید تا حالا در این مورد با حرف زدیم؟ به طور غیر مستقیم اما به این اشتباه میکنم اما احساس میکنم از هم دور شده یه چیزی فکرشو مشغول کرده بیشتر آدم وقتی تو این شرایطن اینجوری بشه میدونی ما میخوایم بچه دار بشیم اما تو الان موفق نشدیم باید امید داشته باشیم گاهی مشکل ریفرند درباره افکارت با زنت حرف بزن بهتر برم خونه اگه برای شان دیر کنم حتما سرم از اسم ناراحت منم همین میتوش خب اینطور که معلومه برای پختن شام از من کمک نخواستین دشته چرت میزدی میری قاسم بیشتر استراحت کن. هر وقتی مردم استراحت میکنم اون کار بده به من قبل از اینکه دستتو ببری <تصفح> دلت برای خونوودت تنگ شده؟ آره پدرم تو دکدمون یک کشورزه درشته میخواست من تمام عمرم زمین کشاورزی شاخ بزنم آره من بهم گفت میتونم یه کار توی شهر پیدا کنم. فکر کنم خیلی به اهمیت میده. آره با خانواده‌ام خیلی خوبم. خیلی عجیبه که اومدم اینجا. اونم تنهای تنها. تو خونه سه تا خواهر و دو تا برادر دارم که یه لحظه آرومم نمیذاره. اما اینجا فقط آرامش دارم. می تو میفهمم. منم تو خانه بودم تا اینکه مامان و بابا به فرزندی قبولم کردن. اونجا توی اتاق با بچه‌های دیگه زندگی می‌کردم. خیلی دلم می‌خواست اتاق خودم داشته باشم. اگه مثل تو خواهر برادر داشتم کلی باشون حرف میزدم من گوش میکنم آره میدونم خب بگو ببینم اینجا رو چجوری تونسته پیدا کنی؟ جای عجیب و خاصیه یه روز که داشتم سواری میکردم اتفاقی اومدم اینجا فضای اینجا مثل فضای داستانایی مورد علاقمه <تصف> با پدر وسایل قدیمی رو آوردیم اینجا و گاهی میایم اینجا و کتاب میخونیم حقس میزنم چرا من از هایی که اسرار زیادی توش پنهانه و عجیب به نظر میرسه خوشم میاد اینجا هم همین حالتو داره ستونه هنوز محکمه این کارو نکن اینقدرها محکم نیستن آره حق با تو ب... به نظرم بهتره برگردیم خونه شما خوشحالم که تو امری با هم خوب شدین میدونی برای بچه دار شدن به این پیشنهاد کرد که آرامش داشته باشم و قبل از خواب کتاب بخونم امتحانش کردی؟ البته که نه اون بیشتر از سن ما کارش این بوده اصلا باورم نمیشه آنی بادسون تو سه سال رفتی دانشکده پزشکی پنج سال دورهی طبابت دیدی و حالا میخوای حرفای آمیانه مادر بزرگو باور کنی خیلی ساد از حرفاش بیاساسه ما از مردم میخوایم چیزی رو که قبول ندارن انجام بدن چون به ما دکترها اعتماد دارن میریم بر اساس تجربهاش حرف میزنه اون سالها با این مسائل سرکار داشته این چیزی که میگه هیچ ربطی به مری نداره چرا اینقدر با روشای مری مشکل داری ببین مری زنی خیلی خیلی خوبیه ولی باید قبول کنی حرفایی که میزنه اصلا علمی نیستن اون که من بهش اعتماد دارم اون به من نداره جدی اون روزی فروشگاه تو که نبودی ببین مری حسابی ازت دفاع کرد درباره چی حرف اون مردی که زنش آنه داره همونی که گفتی چند تا بچه داره برای همین لویت کوین زنش رو پیش من میری حسابی بهش پرخاش کرد به خاطر تو صداشو برد بالا تا مرده یکم ازش حساب ببره زود بهش را بیاف مگه نگفتم زود بر کرمی. سلام بابا برای بود زیاد طول نکشه جوشو رو بردم تا معدن قدیمی رو بهش نشون بدم کمی بیشتر طول کشید نزدیک قرب این یک کم بیشتر نیست برای چی انقدر عصبانی فش می‌کردم انقدر داخلی که بتونه به تنهایی برای اون تا تصمیم بگیره معنی این حرفی شما چیه معنیش اینه که تا وقتی من صلاح ندونم ماجرای ازدواج دیدن هم دیگه تمومه میری مدرسه به مادرت تو درمگا کمک می‌کنی مستقیم میای خونه تا کی تا وقتی که بتونم دوباره رو حساب بستم اونصفانه نیست چاشو همش دو سال از من بزرگتره ولی بزرگتر ولی بزرگترین تصمیم‌های زندگیشو می‌تونه بگیره چاشو نمیگه که همهی قبال این است لیل خیلی نگران آنست بودم سلام بشو اصفه خانم آ... اووینس بهم گفت که اون شب باعث درده سر شدم اصلا بیا مضببت اینکه لیلیانو دیرتر از ساعت مقرر به خونه رسونونه یل لازم نیست خودتو سرزنش کن با این حال متاسفم مامان نتونستم ماجا پیدا کنم بابا گفت مدتی اجازه ندارم ببینمت بابا گفت باید بیشتر راج به ازدواج تو کنم نگفت که نمیتونی با هم حرف بزنی ممنون مامان خب. من کار دارم خوشحال شدم دیدم ات جاشو همیشه سر میزمون برای تو جا هست ممنون خانم منظرت میخوام که تو دردسر سر تو کار اشتباهی نکردی منم نکردم من دیگه بزرگ شدم و میخوام استفادش کنم پترم نباید انقدر به من سخت بگیره اون فقط میخواد مثل همیشه ازت محافظت خوب کنه خوب اما نبا این روش لازم نیست از ابانیشی لیا هم همه چیز وقتی پدرت بخش وقتی وقتی ما اطمینان پیدا کنه درست میشه منتظر میمونه. هم اینو برگردونم. تمومش کردم. جدی؟ تازه به ایده بودمش. وقتی شروعش کردم دیگه نمیتونستم بذارمش کنار. <تصفح> وقتی خورشید طلو میکرد کتابو می از تمام شب بیدار بودی و داستانه تخیلی می خب فکر کنم حتی بدون اونم میتونستم خیلی بخوابم. امیدوارم همه چیز درست بشه. منم همین میری اینجا و عزیزم آنی بری چی بلند شدی؟ کجا میری تصمیم گرفتم برگردم خونه میبینم که دکتورت خیلی خوبه میخوای بری قبل تولد بچه هیچ هیچی نمیشه در آخرین چیزی که لازم داری اینه که مادر بزرگ پیر بچه تو رو روبرا کنه رفتنه که ربطی به اختلافت با بلیندو نداره درست میگم؟ آو نه نه نه راستش دلم برای خونه تنگ شده دلم برای خوابت تخت خودم تنگ شده به علاوه بیمارای اونجایی همچین دکتری ندارن که ازشون مراقبت کنه اگه تصمیم تو گرفتی جلوتو نمیگیرم ولی دلم میخواست پیشم بمونی دوست دارم موقع تولد بچه خانوادم اینجا باشه بلیندام خانواده توی عزیزم پیترم هفته یه دیگه برمیگرده پیشه قبل از اینکه که همه تون برگردین خونه یکی باید خونه رو آماده کنه میرم خونه یه سری به آنی بسنم خیلی طول نمی کشه اگه مورد استرالی پیش اومد بگو بیان پیشم خودت که میدونی باید چی کار کنم حتما مامان و با متشکرم بابت چی برای اینکه منو جا شوهر باور داری نمیدونم باور میکنی یا نه ولی منم هم تو بودم چله رفتنش به این مراسم عمومی رو نمیگیرم درسته که هنوز در مورد ازدواج دل مرددم اما اجازه داریم آجا بهدنش طرف ناسر باید سفارشو مشتری رو تموم کنیم از طرز فکرت خوشم میاد داری میری؟ وقتی رفتن خونه نه چون که میری؟ میرم شهر تا هم با هیش آنی هم کردن چمدون قدم زدن تو شهر ابدا برات خوب نیست خودم اینطور میخوام به لیندا. تو تمام مدت باردارین تو این منطقه گهش زدم با یه پیاده رویه کتاه تو شهر هیچ اتفاقی نمیافتیم دکتر روینز دنی لیلیا میمگفی این چه این میخواد بچه بدونی دیره باشه از بودرش که تو استابل کمک بیاریمش. بیاریم ایش بله خانم خواهش میکنم تو نیستم نرو شهر خیلی خوب عزیزم تو برو خونه و همون جا منتظر باش من و بلینده باید یه بچه به دنیا بریم خالمه تراویس بیمار منه. اگه واقعا به کمکم احتیاج نداشتی بهت اجازه میدم تنهایی کارتو انجام بدی و در غیر این صورت روم حساب کن باشه فقط چون وقت ندارم باهات هات بحث کنم آه هیچ به خیلی طول طوله میکشید چند ساعت اول سبیهی بود ولی بعدا متوقف شد متوقف شد دردوی سایم نمیتونم کاری براش بکنم میرم ببینم چی شده حال مامانت خوب میشه همه چی درست میشه پدر پدر سلام داشته <تصفيق> پدر کجاست رفت خرید بعدشم میره خونه خیلی دلم میخواد به مراسم خوردن بستنی برم منم دوست دارم که به این جهش بیام پدر تو گفت میتونیم اونجا هم دیگر ببینیم ولی من نمیتونم به این مرسم بیان متاسفم ما دیر رسیدیم خونه حق داره نگو که تو هم طرف اونی یه ساعت یوزو چه فرقی داره ما سالم رسیدیم خونه هنوز مثل بچه ها با هم رفتاید وقتی به موقع رسیدیم پدر چطور میتونست بفهمه که اتفاقی برامون نیفتد تو هم مثل پدر شدی. Mondjuk, hogy a mamán halfa van, شوی سالم دارین و حال همسرتون هم خوبه. میتونم ببینمشون. لحظه دیگه. آخ. خوب. مثلا اینکه یه داداش برات نآورده. قشنگ نیست؟ چرا هست؟ <تصفح> یه پسر سالم و قوی. اگه قوی نباشه نمیتونه برسه سر کار. دکتر نیست. مهم نیست کی کار انجام میده باید این کار انجام بشه امروز چیزی یاد گرفتم که تو دانشگاهی پزشکی بهم یاد نداده بود لیا ندیدی؟ نه چطور؟ فکر فکرنی پیش تو باشه تمام بردازور هیچ که اونا ندیده تو مغازه با هم بحثمون شد و بعد با حصر رفت میگو فقط شما درکش میکنی فکر میکردیم اومده پیش تو با اون از بسرکش که برش خریدم رفته هوا تاریک میشه که خارج از شهر گیر کنی فکر کنم بدونم کجاست برای بود مثل اینکه دکتر در وای استراحت درست میگه اونجا باشم حال چطوری؟ مثل دفاعات قبل حالم بد نیست فقط میخوا برم تو تخت میبریم بالا تو اتاق تاریک تبقی دستور بیزشم ف قبل بود؟ نه. دراز عمر میذاریم از پایی دیده بشه؟ این شراغونه. رابی افپریم. لیل لیل. راه دنچبوش می بینمش لیل. Még komma komma لیلیان چطوره؟ <تصفح> چند تا خراش و کبودی برداشته ولی چیزی نیست که خوب نشه امشبو درد داره لی فیلن مراقبش هست چند روزی بهش وقت بده بعد حالش خوب میشه تو این سن هیچی جلوی شادی جوونا رو نمیگیره. به نظرم روحش بیشتر از جسمش آزار دیده اینم فراموش میکنه <تصفح> <تصفح> <تصفح> بچه ها موجوداته خیلی حساسی هست موجوداتی خارگلاده هنوز به خاطر بچه دار نشدن نگرانی فکر نکنم این زودی ها بچه بشیم میریم اگه صرف شدی باشه ولی دارم بهت میگم رنگ موای تو به هیچ وجه به یک زن نازا شبیه نیست تو که واقعا عقیدتی نیست مهم نیست عقیده من چیه مهم اینه که عقیده تو چیه منظور چیه علم پزشکی تنها چیزی نیست که مردم مداوا میکنه. باور این که میشه شفا پیدا کرد مهمه ببخشید که به حرفات شک کردم نباید اونجوری حرف میزدم خداوند میگه اگر انتظار بخشش داریم باید دیگران رو ببخشیم اگه میخوایی ببخشمت فردا سوپ صبح، صبح و تخم مرد درست کو. بهت قول میدم <تصفيق> <تصفيق> الان باید تو تختت باشید تونستم زنجیرم رو باز کنم و بیام پای. تصمیم گرفته بیاد به مراسم بستنی خوری اگه یه جای سایه پیدا کنم و بشینم و فقط بستنی بخورم چی؟ تو نمیری به اون مراسم من دکترم میگم آره. خب یه رای برای دکتر آنی و یه رعی برای قابله به نظرم دیگه همه چی دست توه دکتر متاسفم آنی باید طرف قابله رو بگیرم باید خیلی بستنی دوست دارم برات میفرستم فرق دارم از کجا بدونم وقتی نیستم جایی نمیری؟ جای نگرانی نیست دکتر این در بزرگ پیر مثل یک زندانبان کار اینجا میشینه هر داتون باها مشکل دارم همینطوره کتاب تو بخونا چیزی نم لیلی خوشحالم که سالمی پس این چی؟ کسی کیسینم اونو ببینه. جاشوا که میبینه. اونم توجهی نمیکنه. ممنون که به جاشوه گفتی میتونه اونم توی مراسم باشه. با این حال من و همراه درسته؟ بهش گفتم بخونه بدن به مراسم میام و اونجا هم ملاقات می عجب دختر حرف گوشانی شده. از جاشوا اینو یاد گرفتم. پدر. معذرت میخوام که اون شب سر وقت نیومدم خونه. میدونم چقدر نگرانم شده بودی. نگه خراموشش نفهم لوید به نظرم شوهرم لی رو میشنسید لوید خاصا تشکر کنم حال کام کاملا فرق کرده هر کنی به برای سلامتیش انجام میده اصلا یه آدم دیگه شدی. انرژی خیلی بیشتری دارم هنوز به کلی خواب از نیاز دارم قوی تر از سابق شدم هیچ داروی کارآمد نیست مگر اینکه با روحی خوب استفاده بشه میشه گذشتارو فراموش کرد خب میخواستم بابت یه دنده بودنم ازتون عذرخواهی کنم بازم متشکرم. باعث با افتخارم بود همینطور باید از تو هم ازتون ازخواهی کنم ایبل وقتی به کمکم تیاج داشتی از دست دست بودی می شدم اونذ ما رو ببخشید چیزی برای بخشیدن وجود ذره متشکرم تاماملی به دستم رسید. رسیستری کجاست خدا تو رو به موقع فرستاد. همه رفتن شهر به جشن بلیندار لازم دارم فورا میخواانی یا ببینم بلین دا بیار فورا <تصفيق> خوشحالم که سالمه منم همینطور از کمکت ممنونم هنوزم باورم نمیشه چیو باورت نمیشه اینکه که باهوشترین و ترین دختر دنیا قبول کرده که همسرم باشه خیلی لطف داری که اینو میگی جاشوا لیلیان میخواهد علیشه لیلیان <تصفح> شلن <استشور> زود بشین از اینجا بری فرندا آنی باید زود باهم بیای. بیای جاشوه همارقه باش لیلیان سالم برگرده خونه مالا خواه بری خدا شکر که اومدی هم نگه عصبی کرده بردمش توی تقدیش پیت بهتر اینجا بمونی اون بالا کاریزت بر نمید خدا منده لطفا مرقبانی و فرزندش باش آمین آمین ممنون لی خواهش بکنم بهتره بشویم پیتر اومدی پایینه باشه تشنیچ حاملگیه متاسفه اطفال بچه ما نجاز بدیم میتونی باید چه کار کنی؟ چشمه ممی بنده. منظورم اش این که گفت میدونی باید چیکار کنی چی بود؟ ما باید بچه رو نجات بدیم. حتی به قیمت مت هست از رفتن صدیقیانی. اون بچه اومدی اومدن. اون درباره بوی سزارین حرف میزد که میتونم تو درمانگاه انجامش بدم ولی الان شرایطشو نداره. تو حالا این کارو کردی؟ یه بار توی بیمارستان زمان دانش این کار کرد ولی وسائل بهتر و همکارایی بهتر داشتم بیمارم هم تشنج حاملی که نداشت راه دیگه اینیست اگه بخواد زریزایی زایمان کنه پس بداری زایمان ما نزدتر زدتر شروع کنیم این چیه گیاه اسکاش همراه با کمی فانیل برای خوردن در موقع درد زایمان چند قرن نزن و از این استفاده میکنه گیاه اسکاش گیاه بحشی اینم یه حدیه دیگه از طبیعت هیچی بیفایده نیست به نصرت معصره خیالت راحت باشه یکی از این باعث میشه پسر کچولمون خیلی زود به دنیا بیاد <تصفح> کار دیگه یه هست که بتونم بکنم یه لیوان آب دستاری نداشته نماید اینقدر طول میکشید بهتره بازم وقتی بیشتری بهش بدیم ممکن آنی و بچه را از دست بدیم برای عمل سیزاریم تمام وسائل تو داری به چیزی احتیاج نداری بهتر نیست به اون آرامش که همیشه میگفتی اعتماد کنی م... م... میرم چای درست کن تو هم میخوری؟ چای درست کنم. فاصله داره دو کم شده دیگه وقتشه بزودی این پسر کوچولو رو به خانواده‌اش معرفی میکنی ست تا بچه به دنیا آوردم ولی همچین بچه ای ندیدم اینو به خاطر این نمیگم که دختر پسرمه. فکر میکردم پیسر باشه مثل تو شکم مادرش بود ما تو زندگی خیلی چیزا یاد نمیگم همینطوره که پیشم بوندی ترجمه دادیم همینجا پیش تو باشیم میشه بیام تو؟ I to David Peter. یه حدیه چند از کتاب های مورد علاقه وقتی از کتاب خواستم فکر کردم یکی تا برام میاریم با سرعتی که تو اون کتاب قبلی رو خوندی گفتم حتما کتاب های بیشتری نخواه اینطور فکر میکنیم خب من دیگه باید برم باشه میشه بیام خونه ببینم فکر کنم باید از پدرم بپرسی جشو هر وقت حافظه دنت با لینیان تموم شد اینجا کاما کن اومدم ای خداوند بزرگ به خاطر خانواده ما که در کنار ماست و محبتی که بین ماست از تو سپاسگزاریم امیدواریم راهی رو که تو پیش روی ما گذاشتی طی کنیم تا خوشبخت و سعادتمند بشیم آمین حالت خوبه آره خوبم هوای تو یکم دم کرده بود اه. به وجود تو خونه عادت کردم وقتی بری خونه خیلی ساکت میشه آه. الان یه هفته میشه که دخترم به دنیا اومده به نظرم دیگه وقتش برگردیم خونه خیلی دلم تنگ میشه شاید همین دلیل خوبی باشه که زود بیای پیش ما من چیکار کار میکنی؟ داشتم هوای تازه خوردم و با آنی حرف میزدم دلت برای تنگ میشه؟ مهم. خو؟ یه شب دیگه پیش من میمونم تا همیتیلیم از حضورشون لذت میبریم خریمو چکرم دی باعث افتخارم بود پیید بلینده پاغن از لطفت ممنونم کاش همش کار من بود ولی یه متخصص بهم هم کمک کرد <تصفيق> این ترین لحظه زندگی می خوشحالم که تو هم توش زهی می منم هم همینطور همه سبارشن داره شب میشه <تصفيق> را سلام دیگه موقعه میشه لیندا کوچولو رو برام نگه داری بچه. خدا حفظ بچه‌ها خدا حفظ با احتیاط ببرش مرد خب دوست من ماجراجویی خوبی با هم داشتیم چطوری میتونم ازت تشکر کنم خب میتونی یه بارم که شده به توصیه هم عمل کنم آه. خیلی چیز ازت یاد گرفتم من ازت یاد گرفتم ممکنه من بچه ها رو به دنیا بیارم ولی این تویی که اونا رو زنده نگه میداری و بهشون میرسی اگه به یه قابله خوب احتیاج داشتی میتونی من کجا آ... مرد جوون بیا این شمیدون رو بگیر بسیار خوب واتس اپ کنین این بالا آرو آرو خواب فرما ده کی را میافتیم فکر کنم گفتی داره شب میشه برو دیگه بله خانم هی راه بیا فين فجاه چی من یه دکترم وقتی یه زن باردار رو ببینم تشخیص میدم به خصوص این اون زر خودم باشن <تصوی> ما قراره بچه نار بشیم بچه؟ آه... قراره بچه نار بشیم مرد ملیان اوبنز مدرست به قطع کافی دیر شده زود باش بادو که زودتر برسی حتما ممان جاشوه کوئی همون جا بزن کلی کار داری؟ Well